عزیزان مایه خوشوقتیه که باز هم در این درس از مطالعه کلام خدا با ما همراه هستیم. ما در ضمن مطالعهمون به کتاب یوشع رسیدیم اگرچه اون کتاب تاریخیه ولی کاربردهای عملی زیادی برای زندگی امروز ما داره دعای ما اینه که این درس ها شما رو در ایمانتون تشویق کنه به شما کمک کنه تا مانند یوشع قوی و جسور باشین حالا بیاین با معلممون در درس امروز همراه باشیم در ادامه بررسی کتاب‌های تاریخی عهد قدیم برای سومین بار به کتاب تاریخی یوشع می پردازیم. اولین کتاب تاریخی در عهد قدیم همینطور که در دو جلسه قبلی دیدیم کتاب یوشع مثال بزرگی از ایمان هست کتاب یوشع نقطه مقابل و واقعاً برخلاف کتاب اعداد هست کتاب اعداد یک مثال بزرگ از بی‌ایمانی است. کتاب یوشه مثال مداومی از ایمان است. همینطور که در کتاب یوشه پیش میریم، تصاویر مختلفی از ایمان را می‌بینیم. وقتی که این چشمانداز ایمان را که در کتاب یوشه به پایان می‌بریم، با منظره‌ای خوب مواجه میشیم، به درک بسیار عالی از مفهوم واقعی ایمان دست پیدا می‌کنیم. ما دیدیم که ایمان بیشتر عملی است تا لفظی. در پایان باب 5 وقتی که به یوشه نقشه نبرد عریها داده شد، در واقع ایمان او در بوته آزمایش قرار گرفت. این نقشه نبرد آزمایشی بزرگ برای ایمان او بود. چون به عنوان یک رهبر نظامی و یک نابغه نظامی، یوشا احتمالا در صدد بوده که از استعدادهای خودش در این زمینه بهره بگیره. خدا به او نقشه کاملا مذهک نظامی داد، اما اون نقشه بر عریها پیروز شد چون که نقشه خدا و ایمان یوشا بود. کتاب ابرانیان میگه که دیوارهای عریها با ایمان ریخت این منظور داستان یوشه در باب شش هست ما یوشه باب شش رو به کار گرفتن ایمان میگیم فرمان اون نبرد نخشه نبرد خدا در باب شش مو به مو به اجرا گذاشته شد و مؤثر بود وقتی که یوشه و تمامی قوم حدود سیزده بار در اطاعت از خدا دور عریها رژه رفتن اون نقشه پیروز شد گفتیم که وقتی به کتاب یوشه و نبرد عریها نگاه میکنیم می بینیم که ایمان موضوعی کاملا عملی هست. اون رشد میکنه و راه میره. گفتیم ایمانی کار میکنه که رشد داشته باشه و این چون این ایمانی پیروز میشه. این به کارگیری ایمان هست. در باب هفت از کتاب یوشه داستانی میخونیم که میتونیم به اون انحراف از ایمان بگیم. درست بعد از اینکه عریها به طور مجزاس فع شد، بنی اسرائیل به شهر آی رفتند که در مقایسه با عریها شهر کوچکی بود. اونها گروه کوچکی از سربازان را فرستادند که اون شهر رو بگیرند. سربازان اسرائیلی از مقابل دشمن فرار کردند. مردان آی از شهر خارج شدند و یهودیانی را که برای فتح شهر آی رفته بودند تعقیب کردند و به قتل رساندند. وقتی این اتفاق افتاد رو در افتاد. چرا یوشه وقتی فهمید سربازانش در شهر آی شکست خوردند؟ براد در افتاد و خداوند رو سجده کرد. دلیلش این بود. اونها در نبرد عریها پیروز شدند چون خدا با اونها بود. و اونها کاری رو کردند که خدا بهشون گفت انجام بدن. تنها امیدی که این افراد داشتند این بود که خدا با اونها بود و یوشه این رو میدونست. چون خدا با اونها بود در عریها پیروز شدند. اگر در آی شکست خوردن به خاطر این بود که خدا با اونها نبود. و یا خدا به اونها برکت نمیداد و می میدونست که این یک مشکل روحانی بود، نه یک مشکل نظامی. یک بار شنیدم که مردی بسیار خداشناس میگفت می گفت اگر بانک هاورشکسته میشن یا شرکت برق ورشکست میشه این مایه تعسف و خبر بدی هست. اما این سبب تشکیل یک جلسه دعا نمیشه. اما اگر کار خدا به خاطر اینکه سرمایه ای نداره یا به هر دلیل دیگه ای شکست میخوره، این واقعیت به وضوح به نظر میرسه که خدا دست برکتش رو از اون کار برداشته. بعد رهبران اون کار باید در مقابل خدا سجده کنند، چون تنها امیدی که ما داریم این واقعیت هست که خدا با ماست. وقتی که برای ما تأیید و اثبات میشه که خدا با ما هست، اون تأییدیه ما رو تشویق میکنه که در ایمان به جلو حرکت کنیم. ما به این معجزات در زندگی نیاز داریم که ما رو دلگرم کنه. اما وقتی خلاف این رو داریم، وقتی که آشکار هست که خدا با ما نیست، باید به رو در بیفتیم و خدا رو سجده کنیم تا اینکه بفهمیم چرا خدا با ما نیست. باب هفت شهر داده شده که چرا وقتی یوشا شنید سربازانش در آی شکست خوردن، سجده و دعا کرد؟ وقتی که بنی اسرائیل شهر عریها رو فتح کردند و عریها اولین شهر در سرزمین کنان بود، همه ی باید به خدا داده می شدن، اونها باید به کاهنین داده می شدند. اونها باید در خزانه خادمان خدا قرار می گرفتن. این قانون ده یک هست. کلمه ده یک همینطور که در تسنیه دیدیم نه تنها به معنی ده درصد هست بلکه به معنی اولین ده درصد هست. اولین ده یک که هر چیزی از آن خداست همانطور که در تصنیه آمده منظور از ده یک این بود که به قوم خدا یاد بده که همیشه خدا رو در اولویت قرار بدن. پس وقتی اونها اولین شهر را فعد کردند خدا گفت هیچ کدام از قنایم مال شما نیست. اونها مال منه. وقتی که اونها در بهبهه جنگ عریها بودند مردی به نام اخان ظاهرا ردای شناری رو میبینه که باید خیلی به نظرش جذاب اومده باشه. همینطور مقداری تلاو و نقره. الگوی شناخته شده ی گناه اینه. دیدم، تمع کردم، برداشتم. اخان ردا و تلاو و نقره رو برداشت و اونها رو مخفی کرد. این یک گناه بود. چون که به اونها اكيداً فرمان داده شده بود که هیچ کدام از غنایم رو بر ندارند اما او برداشت او دزدی کرد دروغ گفت و فریب داد به این دلیل اونها در نبرد اول آی شکست خوردن. وقتی ما یوشه رو میبینیم که در مقابل خدا به سجده افتاده چیزی در مورد گناه یاد میگیریم در این داستان و در داستان موسی در دریای سرخ ما یاد میگیریم که زمان هایی هستند که وقتی فرمان خدا اینقدر آشکار هست دعا کردن عملا کار بیهوده ایه. دو جا در عهد قدیم هست که خدا رهبران رو به خاطر دعا کردن سرزنش میکنه وقتی که لشکر مصر در تعقیب بنی اسرائیل بودن و پشت سر اونها دریای سرخ بود، موسا در مقابل خدا به رو در افتاد و دعا کرد. و خدا به موسی گفت چرا نزد من فریاد میکنی بنی اسرائیل رو بگو که کوچ کنند و اما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده آن را منشق کن تا بنی اسرائیل از میان دریا بر خشکی راه سپر شوند یادتونه اینو توی کتاب خروج دیدیم خدا فکر میکرد که اراده آنقدر آشکار هست که برای موسا روشن باشه از موسا بعید بود که برای دریافت اراده خدا که این همه آشکار و بازه بود نزد خدا دعا کنه حالا اینجا دوباره بعد از اولین نبرد آی یوشه برو در افتاده و خداونده اش گفته برخیز چرا تو اینطور خود افتاده ای؟ خدا یوشع رو به خاطر دعا سرزنش میکنه کاربردش اینه که زمانهایی هستند که برگزاری جلسات دعا بیهوده است وقتی اراده خدا انقدر آشکاره این زمان عمل هست نه زمان دعا خدا به یوشع گفت اسرائیل گناه کرده و از عهدی نیست که به ایشان امر فرمودم تجاوز نمودند و از چیز حرام هم گرفته دزدیدند بلکه انکار کرده آن را در اسباب خود گذاشته از این سبب بنی اسرائیل نمی توانند به حضور دشمنان خود بیستن و از حضور دشمنان خود پشت دادن زیرا که ملعون شدن و اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید من دیگر با شما نخواهم بود برخیز قوم را تقدیس نما و بگو برای فردا خیشتن را تقدیس نماین در این مرحله یوشه از گروه سان می بینه او ترتیبی میده قبیله ها رژه برند و او سان می بینه. روح القدس نشون میده و میگه این قبیله هست و کتاب مقدس میگه قبیله یهودا گرفته شد و قبیله یهودا را نزدیک آورد و قبیله زارحیان گرفته شد پس قبیله زارحیان را به مردان اینشان نزدیک آورد و زبدی گرفته شد و خاندان او را به مردان اینشان نزدیک آورد و اخانه ابن کرمی ابن زبدی ابن زارح از ثبت یهودا گرفته شد وقتی که اخان از بین همه مردم انتخاب شد مطمئنم که فهمید خدا با یوشه هست. لازم نبود که یوشه کار زیادی بکنه تا او اعتراف بکنه. او به اخان گفت ای پسر من الان یهوه خدای اسرائیل را جلال بده و نزد او اعتراف نما و مرا خبر بده که چه کردی و از ما بخفی مدار. و اخان با اون الگوی آشنا اعتراف کرد. من دیدم، تمع کردم، برداشتم. اخان و تمام مایم نک و خانواده او نابود شدند. بعد خدا گفت به آی برگردید و من با شما خواهم بود کاربرد حقیقی این درس از متن اون آشکار میشه همانطور که در بررسی سراسر کتاب مقدس انجام میدادیم میخواهیم بدونیم کاربرد حقیقی این درس چیه کاربرد حقیقی چنان که از متن درس مشخصه اینه که چنان چنانچه گناهی عمدی در زندگی های ما باشه خدا با ما نخواهد بود کتاب مقدس در جاهای بسیاری به ما میگه که گناه رابطه ما رو با خدا محدود میکنه بنی اسرائیل حتی نتونستن قبل از اینکه مردانشون ختنه بشن وارد سرزمین کنعان بشن اونها نمیتونستن توقع داشته باشند که برکت خدا بر اونها باشه مگر اینکه مطیع باشند و در اطاعت او گام بردارند ما هم وقتی که قصد داریم کار خدا رو انجام بدیم در حالی که گناه در زندگی های ما هست حتی اگر دیگران ندونند نمیتونیم توقع داشته باشیم برکات خدا بر ما بیاد در متن به زبان اصلی کلمه اعتراف کلمه مرکب هست. از دو کلمه صحبت کردن و یک نواختی تشکیل شده. یا عدم تناقضگوی یا گفتن همون چیز. عدم تناقضگویی یا گفتن همون چیز اعتراف حقیقی هست. به لحاظ کاربردی وقتی به گناهتون اعتراف می کنید باید زندگیتون رو مرور کنید. یا مرور کوتاهی بر اعمالتون و رفتارتون داشته باشید تا اینکه خدا به گناهی در زندگیتون اشاره بکنه وقتی که خدا به گناهی در زندگیتون انگشت میذاره در سخنان پولس رسول در کولوسیان شما باید هر گناهی را که در وجود شما و در زندگیتون هست بکشید تا اینکه برکات خدا بر زندگی شما برگرده در سخنانی پولس رسول در کولوسیان میگه شما باید هر گناهی را که در وجود شما و زندگیتون هست بکشید تا اینکه برکات خدا بر زندگی شما برگرده. حقیقت دیگه ای که میتونیم یاد بگیریم اینه که اگر چه گناه اعتراف شده و با اون برخورد شده، عواقبش باقی خواهد ماند. این در نابودی اخان به تصویر کشیده شده. وقتی که اونها دوباره به آی برگشتند، در نبرد دوم آی شما تصویر مثبتی رو می‌بینید. همونطور که در قسمت قبلی گفتیم، یوشا این واقعیت رو به تصویر می‌کشه که او یک نابغه نظامی هست. اگر شما راهکارهای نظامی را دوست دارید، باید از داستان دومین نبرد آی لذت ببرید. داستان از این قراره. نقشه نبرد این بود که نفرات یوشه درست مثل بار اول باید به شهر حمله می کردن. وقتی به شهر حمله بکنن، مردان آی خواهند گفت این اسرائیلی ها باز هم پیداشون شد. اونها از شهر خارج خواهند شد و بعد مردان اسرائیلی برمیگردند و فرار می و مردان آی اون اما شب قبل از این حمله یوشه سی هزار نفر از سربازانش رو پشت شهر مستقر کرده تا وقتی مردان آی اسرائیلی ها رو تغییب کردند و دروازه های شهر رو باز رها کردند، این سی هزار نفر از مخفیگاه هایشان بیرون بیاین و به شهر حمله کنن و اون را تصرف کنن و شهر رو آتیش بزنند شهری به نام بیت ایل در اون نزدیکی بود در صورتی که احالی بیت ایل بخواهند برای آی کمک بفرستند یوشا 5 هزار نفر از مردمانش رو در اونجا مستقر کرده بود که بین بیت ایل و آی مانع رسیدن هر گونه کمکی بشن وقتی سی هزار نفر شهر رو آتش میزنند مردانی که در تعقیب یوشا و سربازانش بودند شهر رو می بینند که دود از اون بلند میشه و متوجه میشن که فریب خوردن و همینطور میفهمند که به دام افتاده اون وقت یوشا و مردانش بر میگردند و با اونها جنگ می کنن. سی هزار نفر از مردان که در شهر بودند خارج می شند و از پشت سر به اونها حمله میکنند. بعد مردانی که بین بیت ایل و آی موزا گرفته بودند میان و اهالی آی تماما تسلیم میشن اونها تماما از بین میرن این نقشه نشون میده که یوشا یک نابغه نظامی و یک استراتژیست خوب نظامی هست. یقینا او اگر میخواست میتونست در نبرد عریها همچنین نقشه نظامی طرح بکنه اما فکر میکنم که نبرد های عریها و آی به ما نشون میده که گاهی خدا به ما نقشه های مزهکی میده فقط به خاطر اینکه ایمان ما رو آزمایش بکنه اما این معمول نیست این قانون نیست این یک استثناء هست. قانون اینه خدا خدای نظمه خدا خدای طرح میتونید از خدا و مردان خدا توقع داشته باشید که نقشه داشته باشند. زمانی بوده که وقتی من یک چبان ناپخته جوان بودم فکر میکردم که یک شخص روحانی باید شخص بدون برنامه باشه. وقتی که من بین و ترتیب بودم می گفتم خب من هم انسانم و از این بابت عذر می خوام. اما عمیقا روحانی هستم به این دلیل که بین و ترتیب هستم. روزی در مراسم صبحگاهی درس میدادم و به اونها می گفتم که سه دست انسان در دنیا وجود دارند عددی هستند که میگن هر چه بادابات کسانی هستند که, هستن که میگن خودت اقدام کن و دسته سوم کسانی هستند که، نمیدونن چی داره اتفاق میفته. گفتم راستش رو بخواید من از دسته اول که میگن هرچه بادابات هستم. من نقشه ای ندارم. من فقط کاری که خدا روز به روز نشون میده انجام میدم. اما نقشه ندارم. روز بعد در موقع استراحت داشتم امثال رو میخوندم و به این آیه رسیدم. مرد حکیم به آینده فکر میکند. مرد احمق فکر نمیکند. حتی به این فقر هم میکند. واقعا فکر کردم که این كلامی از خداوند برای من بود که به من درس بده. اگر شما هم از کسانی هستید که نقشه ای ندارید، اگر نمیدونید که از کجا اومدید، اگر نمیدونید که به کجا میرید اگر نمیدونید که کجا هستید این رو به گردن خداوند نندازید. خداوند خدای نظم هست، او خدای طرح هست و همیشه نقشه داره. ما می بینیم که در نبرد دوم آی این نقشه به تصویر کشیده شده. چیزی که از نبرد دوم آ یاد می گیریم بیشتر برای ما سرمرشخ است تا چیزی که از نبرد عری های یاد میگیریم. نبرد عری موردی استثنایی از طرز کار خدا بود. حالا در باب نهم کتاب یوشه تصویر دیگری از ایمان می بینید یا دست کم عامل دیگری رو میبینید که ترکیب ایمان رو برای ما ظاهر میکنه. من باب نهم رو باب ادراک ایمان میدونم یکی از مهمترین عوامل ایمان تشخیص هست برای اینکه زندگی در ایمان داشته باشید لازمه که اراده خدا رو بدونید شاید بیشترین مورد سؤالی که از یک شبان میشه اینه چطور میتونم بفهمم که خدا میخواد من چیکار کنم؟ وقتی مردم میفهمند که خدا نقشه داره خدا اراده ای داره این سوال بزرگ مطرح میشه چطور میتونم بدونم نقشه خدا یا اراده خدا برای من چیه ؟ برای اینکه اراده خدا رو بدونید باید روح القدس رو داشته باشید برای اینکه باید تشخیص روحانی داشته باشید باید پیرو مسیح باشید که هدایت روح القدس رو داشته باشید. تدبیر شیطان اینه که فریب بده و وانمود کنه هر چیزی از جانب خدا هست. شیطان هم جز فرشتگان هست. اگر شیطان رو به عنوان شخصیتی با لباس قرمز و چنگگی در دست با دو دندانهای دراز تصور کنید، این چیزیه که دقیقاً خواسته شیطانه. او میخواد که شما او را اینطور تصور کنید. او میخواد که شما او را به عنوان شخصیتی اساتیری تصور کنید. قدرت شیطان کاملا واقعیه. در بود روحانی دو قدرت وجود داره. قدرت خدا و قدرت شیطان. هر چیز روحانی از روح القدس نیست. به این دلیل که موسی موکداً اختیار میکنه که از جادوگری و احضار روح و بسیاری از این چیزها که مربوط به بود روحانی هستند اجتناب کنیم. در باب نه با کسانی روبرو میشیم که جبعونیان نام دارند. جبعونیان هم مثل راهاب فهمیدند که قوم اسرائیل با نقشه ای معین از کنعان عبور می کنن. هر کسی رو به قتل می رسونن و میدونند که اسرائیلیها ها در صدد نابودی اونها هستند کتاب مقدس میگه که اونها در صدد برآمدن که به هیله رفتار نمایند پس کفش ها و لباس خود رو برداشتند و اونها رو گلی کردند و نانهایشان را گذاشتند تا کپک بزنه کفش هاشون رو به تخت سنگ ها مالیدند طوری که به نظر میومد که سال هاست که کهنه شده و لباسشون رو طوری کردند که به نظر می‌رسید بسیار بسیار کهنه نشدن. اونها عملا از تپه مجاور بودند. اما وقتی به نزد قوم اسرائیل رسیدند، اعلام کردند که از مسافتی بسیار دور می‌آیند. تفسیر قمینگیز در این داستان اینه که اسرائیلی‌ها از خداوند مشورت نگرفتند و با این مردم وارد معاهده شدند. جبعونیان از اونها خواستند که با اونها معاهدهایی ببندند. گفتند ما از سرزمین کنون نیستیم، ما از دور دست باز هم اسرائیلی‌ها با خداوند مشورت نکردند. اونها بلافاصله تصمیم گرفتند و با این افراد پیمان بستند. بعد متوجه شدند که جبعونیان از سرزمین دور نیستند و عملا از سرزمین کنعان هستند. در اون ایام اونها به عهدهاشون خیلی پایبند بودند. از اونجایی که با جبعونیان پیمان بسته بودند نتونستن اونها را بکشند. پس اونها را به خدمت گرفتند. لنین گفته ماهدات مثل کیک خشک شده هستند و باید شکسته بشن در اون ایام که مردم حتی خیلی بی تمدن بودن مشاهده میکنیم کنیم ماهدات رو خیلی جدی میگیرند. گیرند اونها جبعونیان رو نابود نکردن جبعونیان الگوی چشمگیری هستند که در کتاب یوشه می بینیم الگوهایی که دشمنان و موانع ایمان رو به ما نشون میدن. اولیش توسط عریها به تصویر کشیده شده بسیاری بر این باورند که عریها تصویری از دنیا هست چون که دنیا برای ما مانند همون رداب و طلا و ای که برای اخان فریبنده بود به نظر می رسه ما می بینیم، تمامی کنیم و بر می داریم جذبه های دنیا ما رو شیفته میکنه. پس بسیاری می عریها تصویری از دنیا هست و دنیا بزرگترین دشمن ایمان هست چون اونها شهر آی رو دست کم گرفتن بسیاری بر این باورند که آی نمادی از هوای نفس هست. به قول ویلیام بارکلی هوای نفس طبیعت انسانی بدون همکاری خدا. هوای نفس معمولاً با طبیعت ما برای گناه یا با میل به گناه همکاری میکنه. عیسی گفته روح مایل هست اما نفس ضعیف هست. کل صحنه آی تصویر زیبایی است از مانعی دیگر برای ایمان. دشمنی که با نام نفس خونده میشه وقتی که آی دست کم گرفته شد، عای آی بنی اسرائیل رو شکست دادن اما وقتی که بنی اسرائیل واقعا چشماندازی واقعگرایانه از موضوع پیدا کردند موفق شدند که شهر آی رو فتح کنند اون موقع بود که تونستند غلبه کنند پس روح میتونه بر نفس غلبه کنه به شرطی که ما نفس رو از دیدگاه درست ببینیم تمایل ما اینه که نفس رو دست کم بگیریم هرگز نفس و قابلیت نفس رو دست کم نگیرید که به مانعی برای روحتان تبدیل نشد وقتی که جبعونیان آمدند و با آنها پیمان بستند این تصویری از خود شیطانه. چونکه این روشیه که خود شیطان عمل میکنه اون خودش رو به شکل خدا در میاره شیطان هم یک فرشته است شیطان به شکلی زشت به ما نزدیک نمیشه که ما رو برای کاری زشت وسوسه و ضایع بکنه او معمولا به شکلی چیزی خیلی دوست داشتنی به ما نزدیک میشه چیزی بسیار زیبا راهکارو معمولا اینه بهترین رو انجام نده، کار خوب رو انجام بده. اگر خدا شما را برای یک خدمت پزشکی فراخونده، شیطان شما رو با دست برد زدن به بانک وسوسه نمیکنه. او شما رو وسوسه میکنه که یک پزشک خوب توی همین کشور باشید. او میگه ما همینجا به پزشکان خوبی نیاز داریم. این چیز خوبیه. اما اگر خدا میخواد شما یک پزشک خادم در کشوری خارجی و دور باشید، اون بهترین چیزه. استراتژی شیطان اینه که ما رو وادار کنه کار خوبی انجام بدیم تا مانع انجام بهترین ها باشه. به این دلیل که خیلی میگن بزرگترین دشمن بهترین خوب هست. پس این جبعونیان اونیان که فریب کار هستن شیطان رو به تصویر میکشند. به این ترتیب ما در بابهای شش، هفت، هشت و نه تصویر سه مانه از ایمان را میبینیم. دنیا، نفس و شیطان. در باب ششم این دنیاست. در بابهای هفت و هشت نفس توسط آی به تصویر کشیده شده و در باب نه جبعونیان کسانی هستند که شیطان را به تصویر میکشد. در مابقی کتاب یوشه شما این تصویرهای ایمان را میبینید. اولا شما چیزی را میبینید که میتونیم بهش چشمانداز مثبتی از ایمان بگیم. یکی از های بزرگ ایمان در کتاب مقدس کالیپ هست ابراهیم شخصیت بزرگ ایمان در عهد قدیم است. اما این مرد به نام کالیب هم شخصیت بزرگ ایمان هست یادتونه که کالیب جزو جاسوسانی بود که گزارش مطلوبی به همراه یوشه آورد. کالیب هرگز دیدگاه ایمان خودش را از دست نداد تمام مدتی که اونها چهل سال در بیابان سرگردان بودن کالیب به اون خوشه هایی فکر می که در شهر حبرون دیده بود مردم داشتند از تشنگی هلاک می شدند و شکایت میکردند. اما کالیب رویای خودش را از دست نداد تصور کنید مردم ازش میپرسیدند کالیب به چه فکر میکنی؟ به گامونم کالیب میگفت من به اون انگورهایی فکر میکنم که در شهر حبرون دیدم او هرگز رویای حبرون رو فراموش نکرد. دیگران متخصصان قولشناسی بودند کسانی که روی قولها تحقیق میکردند. همونطور که وقتی کتاب اعداد رو بررسی میکردیم گفتیم درست مثل سرود روحانی که میگه دیگران قولها رو میدیدند کالیب خداوند رو میدید. کالیب قولها رو دید. او موانع رو دید اما او خدایی داشت که بزرگتر از اون موانع بود وقتی که اونها وارد سرزمین کنعان شدند کالیب شهر حبرون رو فتح و تصرف کرد همون شهری که موسی به او وعده داده بود او به حضور یوشه رفت و شهر خودش رو طلب کرد که بهش وعده داده شده بود که بره و اون رو فتح کنه کالیب تصویر زیبایی از چشم مثبت ایمان هست بعد در کتاب یوشه چشم ایمان رو هم داریم این مطالب رو در باعث چهاردهم تا بیست و سوم می‌بینیم. بارها در این بخش از کتاب یوشا میگه که بنی اسرائیل از بیرون کردن مردم سرزمین کنعان خودداری کردند. خدا دستور جنگ‌های نابودکننده داده بود. اگر اونها جنگ‌های نابودکننده علیه قوم کنعان می‌کردند، هفت بار به بردگی نمی‌رفتند که ما بعدها در کتاب داوران خواهیم دید. ما به کردات چیزهایی مثل این رو در کتاب یوشا می‌بینیم. تقویف یهودا نتونستن. جبعونیان رو را که در اورشلیم زندگی می کردن بیرون کنند چنانکه جبعونیان هم امروز اونجا زندگی می کنند. آنها نتونستند کن آنیان را بیرون کنند و اونها به عنوان خادمین در میان تاوفه افرایم زندگی کردند. از اونجایی که تاوفه منسی نتوانستند افرادی رو که در این شهرها زندگی می کردن بیرون کنند کن آنیان اونجا باقی موندن. شما در این بخش از کتاب یوسف این رو بارها و بارها می خونید و مفهومش این بود که بنی اسرائیل هرگز به طور کامل کنان رو فتح نکردند. در کتاب بعدی کتاب مقدس در کتاب داوران ما خواهیم دید که سالها بعد همون ملت‌ها بنی اسرائیل رو مغلوب کردند و اونها رو به بردگی گرفتند. این کاربردی عملی داره و به بعضی از مردم اشاره میشه که سرزمین های ف نشدهی کنان زندگیشون رو فط کنند. میدونید منظور اونها از این چیه؟ وقتی مردم میگند، من هنوز زمین‌های زیادی از کنعانم رو فتح نکردم چیزی که اونها میگن کاربرد عملی وقایعیه که در کتاب یوشع می‌بینید خدا به ما میگه که وارد سرزمین کنعان بشیم او به ما میگه که وارد کنعان روحانیمون بشیم و اون رو کنیم همه اون رو و برای کنعان روحانیمون به طور کامل پیروز بشیم بسیاری از ما از مصر روحانیمون نجات پیدا کردیم اما اصلا وارد کنعان نشدیم خیلی ها وارد کنان شدند اما بسیاری از جاهای اون رو فت نکردند. شاید یکی دو شهرش رو کردند و این تقریبا تمام چیزیه که به دست آوردن. شبان من به خاطر یک بیماری بدخیم نزد خدا رفت. وقتی او رو ملاقات کردم همون موقع بود که او فهمیده بود که به زودی نزد خدا خواهد رفت. وقتی ما داشتیم در مورد این واقعیت صحبت می کردیم که زندگی او اینجا بر روی زمین تمام میشه و او زندگی در بود ابدی رو شروع میکنه او پشیمان بود او از این پشیمان بود که هنوز کنانهای زیادی داره که فتح نکرده من منظورش رو نفهمیدم خدمت او بسیار مسمر ثمر بود و من فکر کردم که او به خدمت ششاره میکنه پس من شروع کردم به شمردن کارهای حیرت که خدا توسط او و خدمات او انجام داده بود و پرسیدم دیگه دنبال چی هستی تو در خدمتت کنانهای زیادی رو فتح کردی اما او به این زیاد فکر نمیکرد او گفت من به خدمت فکر نمی کنم. من به زندگیم فکر می کنم. من به گناهان زندگیم فکر می کنم. منظورم این کن من کنان زیادی دارم که باید به با اونها غلبه کنم شبانم به دکترش گفت من کنان های روحانی زیادی دارم که میخوام قبل از اینکه نزد خداوند برم اونها رو فتح کنم و دکتر به او گفت تو بیماری درستی رو گرفتی تو مبتلا به بیماری درستی شدی با وقتی که خدا به تو داده قبل از اینکه تو رو به خونه ببره او میخواد که از این رنج استفاده کنه و هر چیزی رو که مغایر طبیعت او هست در تو از بین ببره وقتی که به نزد او بری روح تو با روح او مرتبط خواهد شد تو در ماهایی که خدا تو رو اینجا نگه داشته کنعان خودت رو فتح خواهی کرد رنج ها میتونن بر ما تأثیر بذارن این کاربرد عملیه که مردم از این بخش از کتاب برداشت می‌کنن. آیا شما کنان روحانی سرزمین معودتون رو فت کردید؟ این بخش از کتاب یوشه از سوالاتی رو در مورد جنگ های نابود کننده به ذهن میاره این برای خیلی ها مشکل بزرگیه چطور خدایی که ما امروز او رو به عنوان خدای محبت میشناسیم میتونه دستور جنگ های نابود کننده و براندازنده رو بده فکر میکنم به این سوال در, در درس بعدی پاسخ خواهم داد چون که پاسخ عریض و طویلی داره و نیاز به زمان زیادی داره. در باب 24 در پایان کتاب یوشه، آخرین تصویر شانزدهمین تصویر ایمان هست که ما در کتاب یوشه میبینیم و میتونیم به اون وضعیت ایمان بگیم. در پایان کتاب یوشه، یوشه قوم خدا رو به چالش وا داره که وضعیت ایمان خودشون رو مشخص کنند. یوشه با مثالها گفت وضعیت من و خانواده اینه ما خداوند رو خدمت خواهیم کرد. یوشا موقعیت ایمان خود رو تعیین کرد و گفت هر اتفاقی که برام پیش بیاد بذار برای خانوادم هم پیش بیاد من به جای خودم و خانوادم اعلام میکنم که موقعیت ما اینه موضع ما اینه اول خدا ما خدا رو خدمت خواهیم کرد بعد یوشا مردم رو به چالش میکشه که همون وضعیت رو اتخاذ کنند و اونها هم تصمیم میگیرند همون موزه رو داشته باشند اونها میگن ما تصمیم میگیریم خدا رو در اولویت قرار بدیم و او رو خدمت کنیم. یوشا در ادامه به قوم میگه شما بر خود شاهد هستید که یهوه رو برای خود اختیار نمودید تا او را عبادت نمایید. او اونها رو در پایان کتاب یوشا به چالش کشید همونطور که موسا در پایان تسنیه و در پایان لاویان قوم رو به چالش کشید. او اونها رو تشویق کرد که تصمیم بگیرند خدا رو خدمت کند. تصمیم بگیرند که ایمانی ای رو که به شانزده روش مختلف در کتاب یوشه شرح داده شده به طور شایسته به کار بگیرند و بپذیرند و به این ترتیب کتاب یوشه با موقعیت ایمان به پایان میرسه این روش خوبیه که من و شما وقتی به پایان کتاب یوشه می رسیم راجع به ایمان فکر کنیم آیا تا کنون وضعیت ایمانی خودتون رو مشخص کردید این واقعا کاربرد عملی کتاب یوشه است آیا تصمیم گرفتید که شما و خانواده تنها خدای واحد حقیقی رو خدمت کنید؟ اگر تصمیم نگرفتید، امروز این تصمیم رو بگیرید. بگید مانند یوشه، من خودم و خانواده خداوند رو خدمت خواهیم کرد. دوستان این چالش بزرگی برای من و شما و خانواده های ماست. همه ما حق انتخاب داریم. ما میتونیم تصمیم بگیریم که در طرف خداوند بمونیم یا خودمون برای زنده موندن تلاش کنیم. اگر تا کنون تصمیم نگرفتید که به خداوند اعتماد کنید و ایمان بیارین و اون رو پیروی کنین نزارین یک روز دیگه از دست بره. کتاب مقدس به ما میگه، ها امروز روز نجاته، چون که هیچ کدوم از ما برای فردا تضمینی نداریم. امروز تصمیم بگیرید که به اون ایمان بیارین و اون رو پیروی کنین. دعا می که خدا شما رو در ایمانتون تقویت کنه و شما و خونوادتون رو برکت بده تا برنامه بعدی آرامش او ایمان شما و خونوادتون رو در بر بگیره